جراحای های روب محتا محتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم آسمان صاف و شب آرام بخ خندان و زمان رام خوشه ماه فرو ریخته در آب شاخ دشف برآورده به محتاب شب و آب و گل و سنگ همه دل داده به آوازی ودی دست نی... دیوان دراز زیکی نبودی سخن جز براز است خود جز بداوختن به جز قات و کشتن و سوختن در پادشاهی زهحات نام خداوند بخشنده مهربان سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز در این شب بارانی در این شب زیبای بارانی این شب که میشتمی شب ترکیه فرهنگه این برنامه پنجره های رو به مهتاب اسم من حمید رضا هدایتی راز است و میهمان عزیز برنامه روزهای شب های یکشنبه آقای دکتر فریدون جمیدی هستند درباره شاهنامه فردوسی صحبت میکنند استاد سلام، شب شما بخیر رود بر شما روزگار و شما خوش خوش خورم که ایشالله هستیم با امید یزدان دهش یزدانی سرتاسر سر ایران رو فرا گرفته و باران به خوبی میباره امیدواریم که نتایج خوب داشته باشه برکته نگرش یزدانه ما دلمونو به طرف خداوند پاک و صاف نگه داریم. او از دهش خودش دریغ نمیفرماید. من در همین آغاز برنامه میخوام تلفن های برنامه و شماره تیامه کمون رو خدمتون عرض کنم که شما هر چه سریع تر اگر صحبتی دارید، مطلبی دارید بفرمید از طریق تلفن اگر پیامه دارید برای ما بفرستید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید ما در برنامه پنجره های روی محتاب، یعنی من خودم رو ارز میکنم درست شنیدن و خوب پرسیدن رو تجربه میکنیم موسیقی میشنبیم در خدمتون هستیم خب آقای دکتر جانه عزیز به ما دو تا... یه مطلبی رو میخواستم بیم حالا قبل از اینکه بپردازم به موضوع برنامه که در مورد رمزگوشایی هست در شاهنامه چون دو, رم... دو رمزگوشوده شد میخوام حالا در مورد یه مطلب صحبت کنم مطلبی که به ذهنم بسید و خدمتون عرض کردم در سجوری در اتاق فرمان که با هم نشسته بودیم صحبت میکردیم این بود که مردم ما چقدر با شاهنامه آشنا هستن چی کار کنیم این آشنایی بیشتر بشه آیا در خونه هر ایرانی شاهنامه فردوسی هست یا نه چه اتفاقی باید بیفته این یک جنبشی اتفاق بیفته که مردم هست بیشتر آشنا بشن با این کتاب قشنگ کتاب غنی کتاب عظیم نیاکان ما شاهنامه بانگ صبح بیدار است. شاهنامه کارنامه درخشان کوشش های چند هزاره نیاکان است. شاهنامه درفش برفراشته فرهنگ ایران است. شاهنامه حقیقت مسلم نشاندهنده همه کوشش های نیاکان در طول هزارها در مرکز و پایتخت جهان که ایران باشه. دریغ است که اگر کسی ایرانی باشه و شانوما نخونده باشه دریغ است که کسی ایرانی باشه و نام پدرشو یا نشانی خانه پدرشو از دیگران بپرسه جهانیان این کسی رو که نشانی خانه پدرشو از بیگانگان میپرسه فرزند به شما نمیارند فرزندان ایران باید بیدار بشند و بدونن که برای ایرانی بودن حتما باید هر ایرانی شاهنامه رو بخونه خوشبختانه خب اکنون شاهنامه ویرایش شده در دست ایرانیان هست من پیشنهاد میکنم که جوانان برن غرق بشن در این دریا ببینن چه غرق شدن در این دریا چه رستکاریه چه بلند آشیانی های انسان به وجود میاره چه پروازی روی بال ابرها با وجود میاره من میخواستم از شما درصد پیم شب شب چندم ماه کی ها ت چ این قده نه نه همین جوری باید بدونیم خنجر کنجره رو به موب اگه ندونه که چرا شب, چندو... شب هر یک شب شب بکی نوزده می یا ایش داشت نمرم می این پایین اومده خب من خب دیدم عبر بارانزارو که دشت ها رو زیر بال گرفته و نرم نرم به دشت ها و بعد فراز ابرها که با حافه ما مسافرت می کردیم که محتاب چطور این ابر بارانزارو که دشت ها رو سیراب بکنه در میگیره و رنگ سیمین موج در موج موج در موج به قدری پشت عبر زیباست که به بیان نمیاد این شب شب هیده همه ماهه اگر چه ماه رو نمیبینیم اما باید بزینیم شب ماهه من تولد هیده شب ماه رو به ایرانیان هم خوش میگم ایرانی به آسمان نگاه کن به ستاره ها بنگر، به ماه بنگر، ماه زیباترین منظری است که خداوند در شبها برای تو پدید آورده. این دهشی از یزدانی رو ما باید با نیایش و آفرین و ستایش بنگریم. در جانباستان ماه رو ستایش میکردن. خب هنوزم باقی مونده. شب اول ماه مردم وقتی که کمان ماه رو ببینن یا به انگوشتر نگاه میکنن یا به روی کسی نگاه میکنن. یا به این نگاه آینه میکن. آینه میکنن اینها یادگار نیاکان ماست این یادگار رو گرامی بداریم و این ابر پرباران که از بشت نور محتاب رو نوازش میکنه و از این سو سرزمین ها و دشت ها و در راها و های ایران رو نوازش میکنه این ابر پرباران شاهنامه فتوسیه اون رو باز کنید بخونید با هم باشند من مجلسات شاهنامه خانی بود در قدیم هم این بود از گذشته برای ما مونده. این سنت خیلی خوبی بود. که می این دوره هم و شاهنامه فردوسی می خوندیم. پدرانمون می برای بزرگترها برای ما می مطلبی هم بود که نمیفهمیدیم اونا که می دونستن می گفتن. این خیلی کمک میکنه به این که خانواده ها دوره هم جمع باشن. و این کتاب گرانقدر رو بخانند. برای هم دیگه بگن. آش خلص کردید ما میخوام به... من یادم دفت. مثل که تلفن های برنامه رو بگم آره یادم این بگم تلفن رو یوا هم بگم نمرم شده دیگه پایین دردی بکنم رد بشم تلفن های برنامه 220 و بیست چهار هشتاد و پنج هشتصد دویست و بیست پنجاه و هشت هشت و شماره پیامک ما سی هزار پانصد و پنجاه و هشت است سی هزار پانسد و پنجاه هشت فریدون جنیدی و شاهنامه فردوسی موضوع یک جنب ما هستش آقای دکتر جنیدی در برنامه دو برنامه قبل اگر دقیقاً بگم درست بگم دو برنامه قبل دو رمز از شاهنامه فردوسی گشوده شد که هفت خان بود و چی بود اونطور رمز کیا بود رمز زیاد رو حفظ خوان نبود اون این بود که ما ثابت کردیم که دوین و لیو و سفید یعنی دامووان و دوین های یعنی کوه های تبرستان و مازها ها شکن ها و ایرانیان میخواستن که چراگاه های این کوهستان رو به دستای مرکزی بی و در این راه با گرفتاری های روبرو شدن که کم کم به به پیروزی انجامید و دیدیم که آخر این سختیه های موزندان همون سنگ ها بود که ریزیز شد که زیر پای ره گذاران ریخش شد. این راه ساختم و بر ابر پیروت شدن. عبری که بر تنشگه عبر بود. یعنی خارهای جنگل ها و خود جنگل اینها رو بالاخره ازش عبور کردن و چراگاه رو افضودن. هم در آغاز داستان می بینیم که در مازندران که هم همین گنج بیرنج بگذار یدشت. معزندران باید اشاره درست اینه که چراگاه رو میخواستم بگیرن چراگاه این کوه های میانی رو وقتی این که دیی سفید بودن میشه مثل کوه و با سنگ می‌باره، و خش می‌باره میگه که بدی را از آغاز آراستی چراگاه معزندران خواستی بنابراین ایرانیان برای افغان چراگاه این الزی میانی به چراگاه دشت‌ها دهشتها رفتن به کوه و سختی روشواری رو شدند رو شدن و دماوند هم یک حرکت دوباره کرد و بالاخره مقداری از ایرانیان در اونجا اما آخر راه ها کشیده شد بر عبر ها و بر سختی های راه پیروش شدند و دوین ها رام ایرانیان شد باید. این موضوع دوین ها یعنی دیوان مازندران که برخی واقعا فهم کنید که دیوی داشته و اینها من متاسفانه در تبرستان میبینم که وقتی که اینو براشون میشکافم کسانی هستن که میان در گوش من میگن استاد اینجا کسانی هستن هنوز از نجاد دیو چنین چیزی نیست برای که م... کوس تخت فریدون پدر آریایان جهان در تبرستان بوده و من اونجا رو پیدا کردم درستا الان هست بنابرای کوس رز و کوس محله که از شهر بزرگ باستانی کوس فریدون بر جایی مونده این دوتا روستا تصدیر هم اینه که از آمول گذر سوی کرد، میشه کرد نشستندران نامور بیشه کرد کجا کس جهان کوس خانی همی جزی نیز نامی ندانی همی در زمان فردوسی شناخته نمی شده و من خیلی رنجور بودم از این که چرا پایتخت نیای بزرگ آریایان جهاز شناخته نمیشه ولی بعدن که پیدا کردم و من تصویر در کتاب زندگی و محاجرت آریایان این تصویر رو انداختم. که در کتاب داستان بیشتر در اون سخن خواهد رفت. خب حالا این پرسش اینه که واقعا مردمی که در حقیقت فرزندان فریدون هستند و در حقیقت از نژاد دنیای بزرگ آریایان جهان هستند در تبرستان چطور باید اینا دیو باشند؟ این دیو نیست تو بینه و هست. این گشایش رمز دیوان مازندران رو در کنارش از هفت خانم گذشتیم و من ثابت کردم که این انسان آزاده مثل رستم برای رسیدن به درجات بالا باید از این, مراحل... این بگذر از, از این زینه های هفت مهری که کیشی مهر بودم اونجا بگذره این در باره دیوان مازن امشب فکر کنم با توجه به مطلبی که فرمودی در مورد زهاک می‌خواید صحبت بله من بیشتر از اون بازی اردوی کنم که اکوان دیوان یعنی اندیشه بعد بود که مم. در آخر قهرمان اسلستون بود که باشه که با تمیذات بر اندیشه بدی که در ایران حکومت فرما شده پیروز بشه. بره. این دو رمز چه گفتید. و حالا رمز من تصور کردم که امشب درباره زهاک و مردهای دوشه او سوان بخونه. گفتار شانومه ابو منصوری جمله اومده که من یک بار خوندم ولی خوب مورد باید تو مرتبه به اون برگردیم که در اونجا آمده است که چیزها اندرین نامه بیاید که سهمکین می کجا آن ماران که بر دوش زحاق بررستند آن کس که دشمن دانش بود این را دروغ گرداند و بر تو نیک گردد اگر مغز آن را بدانی یعنی این مغز این داستان رو دریا که این مارهای که بر دو چیز هاک رویدن چی هستن فرسی هم در پیش گفتفتار شان که تو این را درو این چند بار خونمه باز خوند داری. تو این را درو و فسانه مخن به سان روشی زمان مدان از او هر چند در خوت باخررد دگه راه رمز معنی برد در پیش گفتفتار اقوا زی ومس که هر گونه هست آواز این نگونت به جسور خرات راز این پس ما باید راز و رمز و مغز این دوستان ها رو دریابیم ها. و اینکه چطور ممکنه که یک کسی تو تو مر روشونش باشه در داستان ایران ما یک دوره‌ای داریم به نام جمشید که اون رو بعد من در یکی از شب‌های دیگه خواهم چیکافت و اون جمشید وقتی که واژه رو بهش گفتین در عویستا بوده ییمه خشعه ته. خشعه یعنی درخشش. که اتفاقا همون خشعه در پهلاوی شد شد. در فارسی شد شید. میبینین در شید این درخشش هنوز مفهوم خود حفظ کرده. یه یعنی همزاد. و این دورانیه که همزاد درخشش بوده. یعنی زندگی نیاکان و ما در اون با خورمی و و آرامش بوده و یکایی از دقابرت های فنی و هنری و در دانشی یاری نیاکان ما میاد و زندگی خیلی خوش، آرام خیلی خوبی براشون فلا هم میشه که او رو میگن مخ مخشت یعنی دورانی که با درخشش همراهه. هم. متاسفانه گروهی که بر اندیشه های مردم حکم میراندن کم کم در اینجا میریم در سانهان ادعای خدایی کردن یعنی همه این رو ما کردیم و شما باید مراستش کنید. در یسنا که کتاب کوهن ایران هست میبینیم که این جمله اومده که درباره آموزگاران بد آموز این جمله اومده که از ایشان یکی جمشید ویوننگ ها است که مردم را به پاره گوشت خوردن مردم را پاره گوشت خوردن آموخت این در یصن اومده و میبینیم از جمشید به نام آموزگار یاد شده نه با عنوان پادشاه از سوی در شانامه این طور اومده که وقتی که جمشید ادعای خدایی کرد وقت مردم نارهد شدن و همه مبادهان سر فکنده نبون چرا کس او راست گفتن نچون و فر ایزدی از جمشید گوزه است به خاطر این ادعا یعنی کامرانی بیش از حد موجب میشه که در نزد کسانی که رهبری اندیشه یا رهبری کشور رو برورده دارن خودخواهی پیش بیاره و این خودخواهی خواهی نخواهی به اونجا سرانجام پیدا میکنه که مملکت رو آشوب بگیره و این با این آشوب در حقیقت اون خوشبختی ها و شادکامی ها و اون روزگار خوش از بین بره متاسفانه در همین زمان در همسایگی ما در بابل نخستین یک ککومتی پیش اومد که چهره اهریمنی داشت. بابل در زبان عوستهی هست بوری. ما باید بدونیم که زب... ل اصلا در زبان های باس... باستان مثلا زبان های دوری و زبان عوستهی و همچین زبان سانسکریت که اونم زبان که هندوستان هست که خیلی نزدیک به زبان عوستهی ما واقعی ل نیست. همه جا ر. گفته میشه من برای که این زیبایی رو بهش باید از شما خواهش کنم و بعدم از شنوندگان خواهش میکنم که یک بار خواهش میکنم بفرمایید ل شما بگید ل خب حالا بگید ر ر ببینید چه حرکت هنری زیبایی روی زبان رفتاد لره. یعنی هزاران لرزه لره. پیش گفته بشه حالا دوباره با این آگاهی بگین ل له. هیچی نگفتیم یه زبان رو کندیم بله. از ره؟, ره این یه موسیقیه این خیلی خیلی زیباست جواسته. به این زیبایی که در کلامون هست توجه کنیم این زبان. قدر چیزها هست در همین زبان نمفته است که خب ما توجهش نمی‌کنیم در هر در زبان های باستان له نبوده به همین دلیلی که کودکان که زبان به سخن می گوشند اگر یه واژه ای که ردا شوژنتون بگن با لی اونو بیان میکنه برای که زبانشون هنوز صمبله این حرکت زیبایی که شما انجام دادید و امیدوارم که شما هم عزیز ما انجام داده باشه این رو هنوز کودک نمیتونه انجام بده بنابراین بوری بعدن کامپیت در فارسی شده بابل بوری بوری آوستایی بعد از طرفی یک واژه داریم به نام یک یعنی عدد داریم و ایور و کم, کم بوری در سیر تصور خودش از بوری به بابل شد بوری و ایرانیان که نام عصب رو به عصامی می افزودن مثلا مثل گشتاست با ویشتاس با جامعاست با, با ها زیاد نام عصب افزوده میشد نام به نامها به در حقیقت یا با یه دون عصب هم اضافه کردن شد با است ام، که در, در فارسی شد بیور اسب از سوی بیور یا بیور در پله یعنی ده پس پس بنابراین تصور شد که بیور یعنی, یعنی باویل دارنده در ده هزار اسب این نمیشه برای که بابلیان با اسب آشنایی نداشتند. ما حتی در زمان های پسین در نوشته‌های های سومریان که مطالعه به پنیز آسان می‌بینیم اونا اصف رو نمیشنسن. و اصف رو که از دور دیده بودن در سرزمین ایران ایران کوهای، کوههایی که بین بابل و ایران بوده این کوها بوده اوپا ایری سعیه ندر عبستایی بسید اپورسن بسید عبرسن ما متأسفانه هممون به نام نادرست زاگروس که یعنی نام یونانی این کوهاست زاگروس میگیم. و من فکر می‌کنم همین امشب افشب باشه که نشان بدم که این اوپایی ریسه اینه یعنی چی؟ به امید خدا در همین برنامه جاش هست خوب وقتی که سومریان اصف رو میدیدن در سرنشینان یعنی باشندگان کوه ابرسن یا ابرسن اونا در نویش خودشون گفتن کوهی ببینید وقتی که په سال پیش اصف رو اونا بگن خرکوهی پس بنابراین... حاشیه سال پیش در بابل نمیتونه اسب وجود داشته باشه این به قیاس این بیبرس به قیاس دیگر نام‌های ایرانی اسب به اضافه شده همطور که مثلا ما بودا که خب یک شخصیت هندی بوده دیگه ما در نوشتارامون میبینیم که او ازو به نام بوداس پیاد کردن یعنی اسب بهش اضافه کردن پس این نمیتونه دارنده 10000 اسب باشه همون نام بیوره یا بوری یا بابل خب اینا نیرو گرفتن و ایران مرکزی هم دوچار زعف و سراشیب و, و سقوط و انهتات شد پس ناچار ایران رو میگیرن دیگه و لابود بخش های نزدیک به خود بابل تحت تسلط بابلیان قرار میگیره و ایران از اونا شکست پس بسا سرپرستی نبوده یعنی ما یعنی سازماندهی نداشیم که بتونیم در برابر اونا ایستایی بکنیم و شکست میخوریم و بابل پیروز میشه خب ببینیم که این بیورست که حالا به نام پادشاه بابل شناخته میشه چه کارهای کرد اون که یه روزی ابلیس رو به صورت خالیگر یعنی آشپز نشون میده و بر زخاک یا بیورست ظاهر میشه میگه من میخوام که تو رو پربرش بدم با خوراک و نخست از زرده تخم مرغ آغاز می کنه بعد کم کم مثلا پشت گاو جوان و, مرغ و بعد انواع مرغا و بعد ماهی و بعد گوشت و گاو و گوشت آغاز میشه. شه گوشت همطور که من از بند یسنا خوندم آغاز شدنش هم در ایران با عهد پایان عهد جمشید بوده که پاره گوش خوردن آموخت هم در بابل در و باید در نظر بگیرید که انسان ها هزاران سال زیسته بودند بدون اینکه گوشت بخورند و همه از این دوده‌های گیاهان بهره می‌بردن برای ادامه زندگیشون و این گوشت خوردن رو در حقیقت یک پدیده اهریمنی به شما می‌بردند و چون پدیده اهریمنی در کشور سوخت پیدا کرد اون وقت پیامد هایی داره که به شما عرض خواهم کرد. شما شنونده برنامه پنجره های روی مطب هستید. آقای دکتر فریدون جنیدی در باری شاهنامه فرروسی و درباره رمز گشایی راک و مارهای بر روی شانه اون صحبت می کنند با تلفن های برنامه دو 2020،۴صد ۸5 دوست ۲ست پنج و ه هصد دو و ۲ اینقدر بگم که شما بنویسید شد وقت متشکرم و ۳ ه و 3558. 3558 شماره پیامک ماست با ما تماس بگیرید درست خوب بشنوید و سالهای زیبا بکنید سپاسگزارم. Thank you. تو جو دینی یه سوال داشتم در مورد داستان پهلوان می‌خواستم ببینم در چه تاریخی لیست می‌کردم و اینکه در مورد واژه رقصیدن فارسی چی میشه اگه جواب بدن ممنون می‌شم ادروز شاد باشید دوست گردم من چنیبی نیستم من فریدون جنیدی خاک پای ایرانیان هستم و زمان زوئیج رسیدم همراه همزمان با اون در حقیقت جراحی مغزی بود هست که در سیستم پیدا شده 44850 400... سال پیش یک جراحی بوده و از رستم زاد هم همین زمان ها بوده باشه یعنی حدود 5000 سال پیش و اما رقص به فارسی بازی هست بازی از ایشه وز عوستایی گرفته شده وز یعنی جنبش و چون تمام این رقص ها همه با جنبش همراست خوشبختانه در بعضی از این پیوست ها داریم همه مثل چوب بازی، دستمار بازی، پای بازی، دستبازی اینا همه به معنی رقصه بازی از ایشه وز عوستایی یعنی جنبش گرفته شده با درود چرا تاریخ ایران میباید در شاهنامه در نام رمز شده باشد لطفا دلیل را توضیح دهید با درود کیوان میرکی. شاد باشید گسترش یعنی گستردگی زمان ام... مثلا فضل فهمید که شما اگر از زمان یه سال دیگه بگذره و در تواریخ دیگه نخوان که نام محمود این پادشاهان قاجار رو ببرند کم کم در زمان قاجار دریای مازندران رو دادن در زمان قاجار گرجستان رفت در زمان قاجار آذربایجان عزیز رفت در زمان قاجار افغانستان گرامی رفت تاجیکستان رفت مر رفت این کم کم کم کم قاجار تبدیل به شخص میشه و اون وقت در گستری زمان یه شخصی که همه این کار رو انجام میده حالا شما حساب بکنید که اگر گستری تاریخ ما بیش از 10000 سال 14000 سال که من در گفتارهای پیشین بعضی از این مقاطع رو گفتم اون وقت ببینید که در مه مه برخواسته از این زمان طولانی عبر برخواسته از این دریاه بزرگ کم کم کم کم داستان رو رمز در میاره بل. و خب حالا هم زمان اون هست که بیاری نیوکن و فردوسی رمز رو گوشته بشه آیا رستم از یک تحریوان موزندرانی در کشتی شکست خود وای تمولی ر کویم شهر رستان نمیدونم حالا دو روز به تبرستان اما نه چنین نبود <تصفح> <تصفح> در افسانه ممکنه در داستانهایی که به سبک شما گفتم این بوده نه میبینید که شکست رستن جهان پهلوان ماست رستن نات پشتش بز زمین بخوره اگر می‌بینی یک بار پشتش خورد بر دست فرزند خودش بود میدونیم کدوم فرزند فرزندی که دور از فرهنگ ایران بزرگ شده و میخواد بیاد ایران رو ویران کنه تا پدرش رو پادشاه کنه بره توران رو ویران کنه پدرش پادشاه جهان باشه وقتی که فرزند با فرهنگ کشور فاصله بگیره اون وقت پشت پدرش هم زمین میزنه و متاسفم متاسفم بردا و دریغا که در این روزگار نخاستن او اوگان خودمون رو از ایران دور میکنیم و اونها در برابر ایران جبهه می‌گیرن می‌بینیم که در برابر ایران جبهه میگیرن تا دو کلمه درس بخونن در دانشگاه اروپا فورا ایران براشون خورو بی‌مقدار میشه این در حقیقت تجلی همون کاریه که سهراب برای رستم کرد اما رستم پهلوان ما پشتش به زمین نخورد سلام وقتی جناب آقای دکتر جنیدی از شاهنامه صحبت میکنن؟ گویی که من در آن دوران زندگی میکنم و در کنار رستم میستادم و از نزدیک مبارزه های رستم را نظاره میکنم خسته نباشید این خسته نباشید گفت مانده نباشید در مانده نباش مانده ن بوده اسمشون رو اجازه بدید من شماره پیامک شما شما بفرم شماره پیامک اینجا چهمان پنج صفر نهصد و سی و شماره وسطش رو نمی خوونم بیست و سی و اسم ندا و هم امیدوارم همواره رستن پهلاوان رو پناگاه خودتون بدونید ولی بدونید که در شاهنامه قله‌های های بلند بلند بلند رفیه دیگر هست که یکی از اونها بزرگ بود که من در جلسات پیش در بارش صحبت کردم با مجموعه این هنر یعنی جنگ و این فرهنگ و این خرد ما پشت به پشت هم بدیم دست به دست هم بدیم به یاری خرد نیاکانمون آینده درخشان ایران رو بسازیم. آنک سفیده سر. کامم برنامه سلام خطی نباشی به در کاران برنامه رادیو فرند اجازه از استاد عزیز ما دو تا سؤال کنم سال اول که آیا در پدر پدرزدال پهلوان دریمام بود یا نه اگر نبودی توضیح بودین که پدر کی کسی بود و دومین من منم که درباره برنامه سیاوش یه توضیح بدین که چگونه شد دسیسه پدر خانم هست که از از من با تشکر مجید از رامسر شبتون بخش سالی میدوشتم من حقیقت از کرمان مبادمتون میشم از شهر مثل کرمان من از تو بودم بیرون بعد نشدم تو ماشین پیش راژیو رو باز کردم دویدم آقای دکتر درمان شوانامان دارم سوبرک و از عبرای بارونزا و اون محتابی که بالای ابرو داری ابرو رو نوادش میکنه من این زمینی که واقعاً داره از از بارونی که خودامن میریزه داره پذیرایی زیرایه میکنه خیلی واساده من رو جلو خود واساده و واقعا دلم نمیاد که صحبت آی دکتور رو نشدم و برم توسونه خدا شور میکنم و واساده این که برای خیلی همچه عزیزی ما داریم و یادآوری داوری ما میکنم که یه جلسای شبه های و با شاهنامه رو فراموشن من فقط میخواستم از دردی کرده باشم خدمت شما و آی دکت درود بر شما پدر زال سام بود سام سوار در شاهنامه و بزرگترین پهلوان ایران بود جهان پهلوان بود سام پسر نریمان بود نریمان در عوستاز نعیری مناو یعنی کسی که در اندیشه دارای نیرو و شجاعت هست نریمان سام زال رستم دودمان رستمش و پیومکا یه مطلبی است که سلام این بوز هم توام میذارم چرا جوانان و نوجوانان امروز. امروز. امروزی به جای شاهنامه چسبیدن به رایانه چسبیدن به کامپیوتر منظورشون خوب البته من در سخنان پیشین گفته بودم که در سال 1155 فکر کردم که چه کنیم که جوان ایرانی به شاهنامه پیونده و اون وقت نتیجه اون شد که داستان رستم پهلوان نوشتم این 21 سال طول کشید تا اون داستان فراهم شد چاپ دومش به دست آمد و چاپ سبومش هم به امید خدا تابستون ام خواهد بود ما باید به جوان ایرانی نوجوان ایرانی یک کتابی بریم از شاهنامه تو بخونه وقتی که نیست و کتاب های مختوش هست لابد جوان به طرف رایانه میره اما ما باید حتی رایانه رو را فد بکنیم با داستانهای شاهنامه اگر جوانانی که به طرف رایانه میرن داستان های امیر شاهان امرو در اونجا ببینن اونم البته تشویر میشن که بیشتر شاهان رو بخونن یک حرکت همگانی لازم هست یعنی به قول تاجیک ها درکار هست که آغاز شده با امید خدا با هم این راه رو میپیموی نم که مرجع یا کتابی رو آقای دکتر میتونن معرفی بکنن که شاهنامه رو تفسیر یا معنیش هم به صورت سلیس و اینی که حالا ماهایی که شاید یه سری از معانی اینا رو متوجه نشیم رو بگن که بتونیم اون کتاب رو پیدا بکنیم و بخونیم یه کتابی باشه که معتبر باشه که معانیش و تفسیرش مورد تأیید باشه حاج زاده هستم از تهران زنگ از میکنم رادیوفرهنگ مخصوصا خدمت آقای دکتر جنیدی ما از یکشنبه یکشنبه که میشینیم و گوش رادیو فرهنگ میدیم و آقای دکتر جنیدی مطالب راجب شاهنامه فرداسی میفرمایم ما واقعا احساس قدرت میکنیم احساس میکنیم که طوری به بجر مییم که اصلا نمیشه توصیفش کنیم واقعا و ما واقعا به ایرانی بودن خودمون بوالیم. خصوصا آقای دکتر رو. الله که خدا عمر به باعذتش بده که پاند و این مطالب همینجور بر ما گ ما لذت ببریم هزی نداره درود بر شما خداوند با اینحت خودش با ازدتر این رو به من داده برای که با شاهنامه مشغولم، با شاهنامه میزیم و با شاهنامه از جهان خواهم رفت. از این با ازدتر عمری نیست. اما درباره تلفن پیشین من سی سال پیش کسی یک سال پیش کتابی نوشتم به نام زندگی و مهاجرت آریاییان. بر بنیاد گفتارهای ایرانی خلاصه زندگی و مهاجرت آریاییان. و تمام شاهنامه به خصوص در اون بخشی که اروپایی ها میگن اساتیریست من همه رو تفسیر کردم و نشون دادم که اینا تاریخ درست جهان پیشتر از تشکیل کشورهای مختلف و بعد از زمان فریدون بود که کشور ایران دیگر کشورها خودشونو جدا میکنن داستان ایران خواهد بود داستان ایران رو هم مشغول هستم منطقه شما از نماشکو کتاب میتونید زندگی و مهاجرت رو از نشر بلخ از قروفه نشر بلخ که بابسته به بنیادنشان هست بگیرید من سی. یک سال پیش این کتاب نوشتم شما هنوز اظهار عدم آگاهی میکنید و این واقعا برای من درباوره که این کتاب رو چرا نتونستیم پخش کنیم در سر تا سوال کردند کردن چرا فردوسی دوستان سعی نمی کنند شاهنامه را به زبان باز بازنویسی کنند زبان فردوسی زبان گویای فارسیش. شما اگر زبان فردوسی یعنی اون بخش های افتدار از زبان فردوسی بردارید اون میشه کاملترین زیباترین زبان جهان و کاملترین گونه از زبان های ایرانی یعنی شما باید بدونید که انگلیسی ها نوشته های سال پیش خودتون رو نمیتونن بخونن یعنی چون به کمال نرسیده این زبان به کمال نرسیده زبان هم همچنین اینا در راه،, راه کمال رو تیم میکنن که متاسفانه شون شدن زبان بازاری من هیچ وقت فکر نمی کنم زبان انگلیسی به راه کمال برسه اما در زمان فردوسی در زمان رودکی زبان فارسی به کمال رسیده بود شما اگر گفتارهای فدوسی رو منهای افزودها بخونید میبینید که زیباتر و بهتر و خوشحانتر از این زبان نیست خواهش میکنم با این دید شانوار بخونید خواهید دید درود بر در آقای هدایتی لطف دارید در شما داریم و همطور استاد دکتر جونیدی باعث افتخار ماسک ایرانی هستیم و استادان گرانقدی جان استاد جونیدی و شبکه مثل شبکه فرهنگ داریم آقای مهدی از ساری چطور باشید بنده افتخار میکنم که در خدمت ایرانیان است. خیلی وقتی صحبت می کنیم در مورد بخش های مختلف شاهنامه که به شهرهای مختلف کشورون می پردازه ها از اون طرف زنگ زیاد میزنن تماس زیاد دارن حالا ما در مورد مازندران صحبت کردیم و اون خط های زیادی در اینجا زنگ زدن و ببخشید که خیلی تلفن های شما زیاد هستش خیلی شلوغ ما نمیتونیم پاسخ کنیم سعی میکنیم که این کار رو بکنیم اما موضوع از دست خواهد رفت و هم پیامک های زیادی که برای ما فرستادید خب ترشید می‌فرمایید های دکتر جنیدی در مورد زخاک و مارهای بر دوش او بله خب به گمان همه مردم این کاری که آغاز شده بود یعنی گوشتخوری رو یک کار اهریمنی می‌دونستان و همین دلیلی که می‌بینیم که ابلیس میاد خالیگر زهاک میشه و تلافی این کار اهریمنی اینی که دو تا مار بر دوش زخاک می میرود تحقیقات ما که در... به صورت خلاصه تر در زندگی ماجرت اومده و به صورت کامل و با مقاطع درست مورد تایید زم... بانش زمین شناسی در کتاب داستان ایران خواهد اومد نشون میده که درست اون چیزی که در شانه اومده است. یعنی حدود 7000 سال پیش تسلط بابلیان و بابل نخستین بر ایران شد در حدود 6000 سال پیش این تسلط از میان رفت یعنی 1000 سال درست دانش زمین شماسی همین رو یعنی تأیید میکنه و اینم نشون میده که من در یک از جلسات گفتم که گاه شماری خورشیدی 8000 سال پیش پیدا شد بنابراین این گاه شماری درست هزار سال تسلط بابلیان رو بر ایران تأیید کرد خوب هزار سال روشن هست که افراد زیادی میتونستن که فرمان روای بابل باشن و بر ایران ستم بکنن و چون این هزار سال به صورت خلاصه بیورست برامد یعنی یک شخص اکنون دو آتش در هفت سال پیش یعنی همون زمانی که تسلط بابلیان بر ایران آغاز شد در دو سوی ایران شهر شروع کردن به فبران یعنی یکی دماوند، یکی البروز در نزدیکی مرز گرژستان امروز شما می‌دونید که قفقاز متعلق به ایران بود و اینا ایرانی بودن و متاسفانه تبلیغات نادرست بود. قرضاالود اروپاییان گرجی‌ها رو از ایران جدا کرده به ویژن که یک پادشاه غیریزبانی مثل آقا محمدخان قاجار در گرجستان فجاعه زیاد کرد و اینها را رموندن از ایران و به تبلیغ اروپایی‌ها گمان بر این است که اونها یک نژاد دیگر هستند که آریاییان از اونجا سرچشمه گرفتن در حال امروز متاسفانه در قفقاز غیر از اصید اصیدی ها که هنوز خودشون ایرانی میدونن و غیر از تات ها که در شمال آزربایی هستن بقیه خودشون از ایران جدا میدونن اما خب نمیتونن به هفتزار سال پیش برگردن بگن اون وقتا جدا بوده این فوران البروز و دماوند با هم پیرامون هفتزار سال آغاز شد چون کشور تبدیل شده به یک شخص به نام زح آنو برین تو به شان میشه دو تا مار که روی شونه این هستن یعنی یکی این سوی ایران شهر یکی اون سوی ایران شهر خب این وقتی که این کار اتفاق افتاد مردم گفتن این در حقیقت پاسخ اون کار اهریمنی خاری بود که دو تا مار از شونه زهاک رویده خب اینجا نام زهاک هم مفهوم پیدا میکنه برای که در زبان هم زبان در زبان عوستایی اجی گفته میشه و اجیده هاکه در زبان سانسکریت اهی گفته شدود اجیده هاکه کم کم تبدیل میشه به اجده هاک و اجدها ها و معرب این شد زخاک این, این هزار سال سلطه بابلیان بر ایران و البته بر خود بابل این تبدیل شد به یک شخص به نام زخاک حالا تصور عمومی اینی که بر اثر پیدوی از احریمن که گوشتخاری رو رواج داده باید یک کاری کرد که این در حقیقت این درد دقا پیدا کنه یعنی این دوتا مار که برشانهی زخاک و کشور هستن اینها باید خاموش بشن برای خاموش شدن اینها هم باز یک پدیده احریمنی پیش میاد یعنی رای زنان احریمن صفت پادشاه باویل با او میگن که شما باید برای این دو مار قربانی بکنی جوانان رو بله و آغاز میشه به اینکه جوانان رو قربانی کنن برای البروز و دماوند هزار سال دین دروغ هزار سال ستم کشتار آزار و هزار سال بردن جوان ها به پای دماوند و البروز البته من البروز رو که عکساش دیدم و موفق نشدم اما جایگاه کشتار جوانان ایرانی در دمووند رو پیدا کردم. کجا؟ روبروی دمووند یک روستایی هست به نام نوا. و من یکی از جاگدانم آوا واحدی یه وقتی که من و افچنکم روان شد دعوت کردن به خونشون که درست روبروی دموونده. و رفتیم اونجا روبروی این یک کوه بلندی بود. من از این آوا خوش کردم که تو رفتم بالا یا نه گفت که نه نه گفتم خواهش میکنم برو ببین سنگچین سنگچین هست اونجا چون که این جوانان رو که برخی میکردن یعنی قربانی میکردن این بود در سنگچینی چیز باشه روی زمین نمیشه چون درست در خون دمابند بود فردای اون روز این دختر اومد گفت یک جوانی که میگه که جای سنگچین ها جای دیگه است من از رفتم پیش اون جوان گفتم که بالا این کو سنگچین بزرگ گفت نه اونو این وجود نداشت سنگچین اون طرف است با دست رو روغول گفتم که خب نام اونجا چیه گفت نماز چال گفتم خب تموم شد که نماز از میشه نموستایی یعنی تظیم کردن درود ترسوندن و ابراز احترام کردنه و از اونجا جوان ها رو میکشتن یعنی در حقیقت در همان از اونجا نماز به شیوه اهریمنی بابلیان بوده که با خون و خونریزی همراه بوده من از اون جوان که آقای رشیدیه اسمش رو میگم خواهش کردم که فردا بیاد من پام پا درد می‌کرد برای کاروان ترتیب داد و رفتیم وقتی که رسیدیم به اون جایی که نمازچال بود اون جوان با شوق و با حرارت گفت که اینجا نمازچاله من گفتم نه اینجا نمیتونه نمازچال باشه گفت که ما هزار ساله میگیم اینجا نمازچاله شما از کجا میگی اینجا نمازچال نیست گفتم برای اینکه بعد جایی باشه این سنگشینا سنگشینا نشون داد. گفتم یه جایی باید باشه که پیکر دمواند کاملا دیده بشه بانک سد و چشمش درخش برداشت گفت که بله بله جلو جلو سنگچین داریم که دمواند دیده میشه ما رفتیم جایی سنگچین که به یک دایره بود به قطر 4 متر و سه تا دایره به قطر 1 متر اطرافش بود که معلوم میشه کاهنان بابلی اونجا سرودها خودشونو میخوندن و جوانان ایرانی رو میوردن رو این سنگچین بزرگ قربانی میکردن و جلو اون یک پردگاه خیلی بلند بود که پیداست که این جنازه ها رو می اونجا خب تعداد کشتار جوانان ایرانی به دو نفر در روز محدود نمی شده. اما باید بدونیم که چون دو دماوند و البروز تبدیل میشن به دو مار روی شانه یک کس بنابراین باید داستان به این طرف سوق داده بشه که مغز جوانان ایرانی رو دن چون نمیشه بگیم که یک جوان ایرانی رو دادن به خوراک مار بنابراین یه چیز کوچیکری باید باشه شد به مغز زبان ایرانی این در حقیقت کشتارگاه هست و من در کتاب دا ایران تصویرش رو آوردم به زودی به دست ایرانیان خواهد رسید و در البر روز هم بعد اگر زمان باشه بریم حتما اونجا هم یک چین چیزی پیدا میشه هزار سال سهتم و زدن و کشتن با تازیانه وقتی که ترانک درباره آتین با فریدون صحبت میکنه میگه گرفتند و بردن چ بسته تو یوز یوز بلند که حتما توی تلویزیون دیدین دیگه شما که چقدر تحرک داره بدنش هر جا رو از جای دیگر حرکت داره باید ی یوز بلک اگر بخوام ببندن بعد ده دور تناب دور بدنش و پاهاش و دست و گردنش ببندن تا این در حقیقت درقیتت کنترل در بیاد خب جوانان ایرانی رو اینطور می حالا فکر می که از کجا مثلا از خوارزم اینا رو به صفت می با, با تناب می بستن کردن هاشون رو می آوردن دستا پاهاشون رو از بلوشستان از پشتونستان از کابول و قندهار از کردستان غربی از همه جا اینا رو می بردن دیگه یعنی یک سفر پر از درد و رنج و ستم چند هزار فرسنگ تا اینکه نپایان پایان اون هم این بشه که اینها رو بکشند در برابر دماوند یعنی مارهای دوش زهاک ما از استاد محترم میخوااستم که توضیح بدن در رابطه با معنی زهاک و اینکه ما اگر بخوایم شاهنامه فردوسی ویرایش استاد جنتدی رو تهیه کنیم آیا تو نمایشگاه کتاب این شاهنامه ارائه میشه اگر که ارائه میشه لطفاکن آدرس اون موسی که ارائه میدن رو لطف کنم بگن سپاسگزارم شاد داشت شانامه در نماشقا ارزه میشه در محساسی نش وقت که وابسه بنیاد نشابور هست بگردید پیدا کنید با امید خود. و یه سوال شده پسر زخاک آیا پسر داشته زخاک نه ما،, ما از پدرش خبر داریم که مرداس بوده که مرداس نام گیران مایه بود به دادو تا هیچ برترین پایه بود یعنی نشون میده که پیشتر از این که حکومت یفتید دست بابلیان در یک نقطه دیگه از دشت نیزه, نیزه کسانی بودن که به باداده دهیش ندیگ میکردن اما زحاک به در حقیقت تقویت ابلیس چاه میکنه جلو پدر و پدر رو در چاه میاندازه میکشه و خودش سلطنت رو میگیره از پدر او که مرداس باشه دشتان یاد شده و از پسرش دیگه یاد نشده پیامک داشتیم همین الان چشم میگم لطفا شماره تماس رو دوباره بیان کنید شماره تلفن های ما 220 400 85 220 400 85 220 58 800 220 58 800 شماره پیامک ما 30558 هست در مورد زهاک اگر سوال دارید بفرمایید که آقای جنیدی پاسو خواهند گفت حالا بحث بعدیم اگر فرصت بشه انشالله خدمتون اعلام میکنم موسیقی بشم. پیامک ها زیاد هستش آقای دکتر این پیامک رو بذارید براتون بخونم این خوبه درود بر همشون خوبه همون تا میگم حالا به چیز نمره آره، چون جالب بود برام درود بر استاد جنیدی کدام شخصیت شاهنامه میتواند نمونه یک انسان آرمانی ایرانی در دفتر اندیشه و کردار به شما را سپاسگزارم آقای منتی از همدان به من ایرج نماد پروتنی سراندازی و احترام به بزرگتر و ما ایرانیان نامم خودمون ایرج گرفتیم و البته سیاوخش نماد پیمان و نماد راستویی و جانفشانی در راه راستی رستم در جانفشانی در باره ایران و کوشش درباره صرفروزی ایران همه همه با هم یار و یاور بودند ما در اشتاق پهلوی داریم کیان و یلان و درود فرستاده شده به همه اونها کیان یعنی پادشاهان یلان یعنی رستن و توس و بودرز و گیو و همه این بحرام و سیاه و همه اینا یل بودند اینا یلان بودند که با حمد خودشون با جانسپاری خودشون در راه ایران تخت کدچاهان رو بر فراز ابره میذاشتن یعنی ایران رو به فراز ابرها بردن همه شاهنامه دلپذیره همه خوبه بخونیم اون وقت متوجه میشیم در مورد زمان هم سوال کردن اتفاقا در مورد گردآفرید سوال کرده بودند بله گردآفرید هم میتونه نماد دختران شجاع امروز ایران باشه ما امروز گردآفرید کم نداریم مونتو خب اینا فرزندان گردآفرید هستن بعد باز همینطور باشه بعد دختران ما باستی شجاع از بس و سراندازی در راه میهن رو یاد بگیرن از گرد و سوال دیگه این بوده با سلام و عرض ادب خدمت شما و میمنه عزیزتون لطف کنید از استاد بپرسین بیت صحیح و جایگزین توانا بابت هر که دانا بابت را یک بار دیگه بیان کنند با تشکر فراوان شماره پیامتشونم حالا بعدا اعلام میکنم سف 913 سف شماره وسط شنه میخونم 1138 درست سخن گفتار فدوسی این بود است که چنان دانهران کسی که داناتر است به هر کاری از تو تواناتر است این بیت مخصد قرار میگیره برای افزادندگان که اون بیت رو بسارن در آغاز هم جا بدن من در یکی از گفتارها نشون دادم که برنا با دانا نمیتونه تلفظ بشه یا با توانا. برنا با یه چیزی میتونه مثل سرنا، مثل دورنا پسابا بگیره. پساوا رو من به عنوان قافیه انتخاب کردم. خالق مطلق پسابا آمد گرفته بلی من پسابا یعنی آوای پسین. بنابراین این به دلایل زیاد اون بیت از شانامه نیست. افزود است اما اون افزاینده از رو این بیت که دو مرتبه میگم. آروم میگم که بنویسید چنان دان. هران کس که دانا است. و هر کاری از تو تواناتر است این گفتار از فروسس. محترم شبکه رادیو فرهنگ و تبریک و مناسبت 70 سال شدن رادیو و درود بر استاد بزرگ جناب دکتر جنیدی. اولا در رابطه با تماس یکی از اهل وطنان محترم مضام شدم. ایشان اشاره کردند که اسفندیار فرزند افراسیاب بود. بر خودم لازم دیدم که یادآور بشم اسفندیار فرزند شاهگشتاس بود نه افراسیاب. خواهش داشتم که شماره انتشارات بلخر در رابطه با شانامه ناب و گردآوری شده توسط جناب دکتر جنیدی مجددا اعلام بفرمایید با تشکر سیفوریم از کرمانشاه خدا حفظشم. این خدمت شما شما میتونید با بنیاد نیشابور صحبت بفرمایید یه ما رو معرفی بفرمایید البته فرمودن استاد که در نموشکای کتاب میتونید به انتشارات بلخ مراجعه بفرمایید و خودتون بگردیم پیدا کنیم ما نمیتونیم این کار رو بکنیم به خاطر اینکه دوستان دیگه هم هستن و شینی دیگه هم هستن اگر بخواد چیز بشه خدا نکرد خود خود استاد مایل نیستن که این اتفاق بیفته منتها من تلفن‌های بنیاد نیشابور خدمتتون عرض می‌کنم با اونجا تماس بگیرید اگر خواستید بپرسید بفرمایید بپرسید هشتاد و هشت ن و شش بیست و هفت هشتاد و چهارم جقدر <تصفق> <تصف> تلفن دا برای عجله می پیامگان مونده هشتاد و هشت نه و شش بیست و هفت هشتاد و چهار برای برای اون بخش بالدیگر فرمودن که اسپزی ها پسرففت نه درست اسپزی ها معلومه که پسر خوشتاسه و اگر کسی این سخن رو گفته نادرست بوده اگر من هم پاسخ ندادم ببخشید حتما پریشان شده افکارم یا بالاخره تلفون ها مکرر بوده اینا از خاطر بردم بله اسفندی یل، پور گشتاس به کیا نیست و سوالات پرامک شما الان می بذارید یکی چاله رو در جماع ای الهایتی لوست دارید همتای دکتر جان دی عزیز اگه میتونستم پیام کار رو به خط میخی میفرستادیم چقدر خوب میشد آقا بهروز از آباد. افتادین جالبم آبا. ما آغاز کردیم برای اینکه ایرانیان زبان پهلوی رو بشناسند و خط پهلوی رو بدونن برای اینکه زبان پهلوی یک در حقیقت میونجی هست بین زبان‌های امروز ایران از کوردی و لوری و بلوچی و پشتون و یغنابی و دراجی و همه اینا گرفته تا زبان های فارسی بوستون شما زبان پلوی رو بیاموزید کم کم با امید خدا گم برمیداریم خط می خواهیم آمخت ما باید این یادگار نآکانمون رو همه بخونیم و همه آگاه بشیم ببینیم که اونا در چه پهنه وسیف در چه گستره زیبایی زندگی میکردن با فرهنگ اونو آشنا بشیم کم کم حالا جالبه پیامک دیگه سلام مگه میشه از دوش انسان دمار دو بیرون بیاد چون کس انسان است. بنابراین تخیلی بیش نیست آقای دکتر <تصفيق> من که گفتم <تصفيق> که این نیست این دقیقت دو آتش بشانه که چون شخص یعنی کشور تبدیل شده به شخص به نام میورست میورست یعنی بابل یعنی پادشاهی بابل چون کشور به یه شخص تبدیل شده بنابراین ما, ما دو ماری که دو طرف کشورم هست اینا تبدیل شده دو ماری که بیان رودش این تمثیله وگرنه نه دو آتش بشانه آیا ایو واقعا تشابهی بین اجیده هاک جد مادری کوروش کبیر و, و زها هاگ وجود دارد این غلطخوانی اروپایی است برای که اون استیاق بوده استیاق رو هیچکس هم معنی نکردم ولی خوب من در دستور رو معنی کردم اشنی یعنی نیت سری تیاق یعنی حرکت کردن یعنی توندرو استیاق هیچگو اجیده هاک و اجیده هاک نیست و هیچ مادر ایرانی نام فرزند خودشو اژدها نمیذاره مون تو این رهاورد غلطخوانی و بیچارگی در حقیقت تخربيون است که به طرف ایران اومده متاسفانه اینجا ما پیروان زیادی داریم برای اونا که گفتارهای نادرست اونها رو معتبر میدونن استیاق یعنی تندرو سلام و درود بر بزرگمرد ختینشابور که این زیبا, زیبا شاهنامه رو به امز گوشهایی میکنند آقای حمید حراتی نو فرستادم درود به حرات <تصفح> ما قهرمان بزرگ هراتی هم یکی از اون چهار کسی بود که شاهانوان رو ترجمه کرد که در جلسات پیشین من به شما گفتم لحجه و گویش مازندرانی تو محل ما کندلوس محل مادریمون به دیو دیو گفته میشه و اون عوام قدیمی ها که سواد نداشتن دب هم میگفتن و میگن ازخواهی میکنم مزاهم شدم سنگاری هستم از شهر مزاهم شدم حق میگه شما با. دروت بر شما و دروت بر کندلوس که من اونجا رفتم خب من برای شما معنی کنم کندلوس یعنی خانه روشن و همتی در کندلوس بوده که یه گروهی حالا شخص کندلوسی واقعا اونجا یک ای فراهم کرده که یک روستا رو داره به ایران معرفی میکنه من امیدارم که در همه روستاهای ایران یک روزی از این گنجینه ها داشته باشیم همه روستاییان ما بدونن که اینا هنر و فرهنگ نیاکانه نیوکونه اینا لازم نَبَد بون بون گنج و قارت تو اینها بفروشیم به دیگران اینا رو اگر نگه داریم یه روزی همه روستاهای ما مثل کندلوس دیگه که مرکز در حقیقت جهانگردی میشه که از اطراف کشور دورون بهش میرن و این گنجینه رو می بینن این آرزو رو برای همه روستاهای ایران میکنم کنم درست تلفظی هم که گفتین درسته ولی خب همین که از کردم من هفته پیش از آقای دکتر سوتودی که استاد بزرگ طورسان هست مطالبی رو آوردم که به تپه ها و کوه های بلند دوین و دون و دین گفته میشه اینا همه تلفظ دیگه از همون دیوه و دیوان مازندران که کوه ماز هم که بین دمووند و دمووند و اونجای که ورسک تونن ورسک داره الان فراموش کردم شهری, شهری که تونن ورسک داره. خود شهر برس می دیگه خب از بعد از اونه بعد از اون بله می می آدم همون کو بعد که ما گفتم به ماز الان هستا بالاخره اینا تحیاوی ایرانیان به چراگاه های اون فراز اون کوها شاد باشد. درود بر استاد جنیدی و مجریه برنامه درود بر شما از دستن در کارنا رادیو خوشمند این برنامه ویژه شاهنامه خانی نیست با حضور استاد جنیدی در رادیو تاثیب دهند تا همه ایرانیان از محضر استاد بحثند شوند درود بر تمام آزادگانی که در اندیشه فرهنگ ایرانیندشا همچ کاری بکن ما امید خدا پیشنهاد بین شما بعد پیش شما, شما خستید قبان این کار با منی جانه... یک جون دارم سر دست ها فدا ایرانیا آخر از <تصفيق> این کاری نکرد بادا یهداریتون باشه که در خصوص رمزگشایی از داستان دیو سپید و اکوان دیو در داستان دیو سپید کاملا همه چیز ملموس و واقعیه یعنی در خصوص کوه و تمام اون در واقع اناسور واقعی اما در خصوص اکمان دیو آی دکتر فرموندن که این اکمان دیو در واقع اندیشه بد هست ازشون صاحبه بفرمایید که چرا فردوسی اومده و این اندیشه بد رو در قالب یک موجود جانداری به تصویر کشیده چرا از این نوع در واقع زبان رمزی برای این فکر بد استفاده کرده خیلی متشکرم میشه ممنون از لطفتون خداحافظ شما دروس بر شما در این سخنانی که گفتگوهایی که پیش میاد من میبینم که دختران فرانک و تهمین و رودابا و سیندخت و کمتر شرکت میکنن حالا که شما فرمودید این اکوان در حقیقت اکومن اکومن در عوستا بوده اکو یعنی اندیشه بعد بعد در پهلوی میشه اکومن و در شان... ترجمه شانامه تبدیل به اکوان شده همون من یعنی اندیشه و اکو یعنی بعد که در ای که انگلیسی هم هنوز وجود داره به معنی بیماری و که بعد باشه خب من در اون داستان از کردم که خوشی و شادکامی و در حقیقت سرمستی و زیاد روی در خوشگذرانی که بعد از پیروزی بر تورانیان پدید اومده در ایران اینها رو کشید به طرف شادکامی و کمتر اندیشیدن و به سوی چیزهایی که در حقیقت انسان رو رهنمون میشه به سوی بدی و خوب کشور دچار این شد و باید حالا این پدیده از بین بره یکایی اونجا شهر دادم این بدی طوری که خودشو زیبا نشون میده در قالب یک گور و رستم که پهلوان ایران هست که از هفت خان گذاشته میشه که این رو از بین ببره دریقش میاد و او رو میگه بگیرم در حالی که اندیشه بد او رو میگیره. یعنی ما نمیتونیم اندیشه بد رو مهار کنیم. مگر که باش مبارزه کنیم. در این صورت اندیشه بد بر رستم پیروز میشه و او رو سر به هوا میکنه. اینا همه خیلی روشنه خیلی ساده است. و بعد در آسمان از اون میپرسه که کجا بندادم تو رو به دریا یا به کو و می‌بینیم که رستم دیگه اینجا بیدار میشه. بیدار میشه که میگه که به کوف بندوزی که جنازه منو ببینن و شیر و پلنگ، این که توی حله بر پهلوان رو ببینن، او برعکس میکنه به دریا می‌اندازه. پس از دریا وقتی اومد بیرون این بار تمام یزدان رو می‌بره و این بار فریب زیبایی اون رو نمیخوره یعنی اندیشه بد رو و با او مبارزه می‌کنه. این یک تمثیل خیلی خیلی زیباست این تمثیل‌ها در داستان‌های ایرانی ما خیلی دیدیم مثلا در کلیله دمنه از البته از هندستان اومده و در بقیه کشورام هست تمسیل زیبایی است عکوومن یعنی اندیشه بد لطفا درباره بانو گش دختر رستم بگویید بانو او در بخش افزوده شام است که میگن زن گیب بوده البته در داستان های افزودشان اومده که گیب که رستم یک دختری داشته و پوانان ایران در صورتی میتونستن اونو بگیرن که روی یه قالیچه بشینه و قالیچه رو بتونم بکشم و تنها گیف بوده که تونست بکشه و قالیچه پاره بشه و بنافاصله این رو دادم به گیر اما این نه از شاهنامه نیست از افسانه های شاهنامه است من اینو مخصوصا دارم میخونم به خاطر اینکه با توجه به موضوعی که مثلا داریم در مورد صحبت می و شما چندین بار فرمودید در آغاز صحبتم فرمودید با سلام آیا شاهنامه افسانه است یا نه جواب بدیم. چیکونم. <تصفح> <تصفح> این شاهنامه تاریخ درست روشن مدلل گسترده جهان آریایی از آغاز آفرینش تا زمان سپهره شدن و از اون بعد فقط تاریخ ایران و مبارزاتی است که ایرانیان با همسایگان داشتند وقتی در یک کتابی در تنها کتابی که در جهان وجود داره که اندازه چطور پدیدار شد این کجاش افثان است دیگران ندیدن چشم دونستن اینو ندونستن که اندازه چطور به وجود اومد ما فقط در ش... هیچ تاریخ علمی در جهان هیچ ای نگفته که اندازه چطور وجود اومد ما فقط در شان داریم البته من در جلسات بعدی این رو خواهم شکافت. وقتی که در این پلشکی و درمان هر درد من در تندرستی و روح گزان شما نگاه کنین در زمان جمشید یعنی بیشتر از 8000 سال پیش داره از درمان یعنی بهدار از پزشکی و از بهداشت سخن میگه یعنی دو شاخه پدید اومده یه شاخه پزشکی یعنی درمان یکی شاخه پزشکی که چیکار کنیم که مرض نیاد در تندرستی و روح یک چنین عظمت یک چنین آفتاب درخشانی رو ما چطور میتونیم بگیم افسانه این دا داستان درست یعنی تاریخ درسته نیاکان ماست و پژوهش هایی که کردن جانفشنه هایی که کردن هایی که کردن در تا زمینه تاریخ جهان آریا و جهان ایرانی این جالبه من میخونم چون پرامک دوستان هست خب اشاره هم بکنی چون رحمت کشیدن بخت... اه... یه بختیاری گل هستش که داره این رو, رو بر اون برامون با سلام و تشکر آیا از ایل بختیاری در شاه نامه ذکر شده مردونه جواب بدید <تصفيق> من از این سخن خیلی رنجیدم مگر شما از من چه طبقه دارید خیلی سخن زشتی بود بره. وقتی که سخن میگید شده آنها سخن گوید سخته به سه گفتار بعد کام پردخته به نه از ایل بختیاری نام برده نشده اما از گیو وقتی که پهلوان ایران نام برده میشه گیو نیای بختیاریان و لوران بوده خواهش میکنم توجه کنید پرسشارتون. نباید اینطور باشه بله. درود بر شما و استاد جنیدی شاهنامه 95 هزار تومان برای من بازنشسته سنگینه آیا در نمویشگاه تخفیفی هست امکان خرید هست بفرمایید شاد باشید من نباید باره. من باره شهنم بیاد پایین که نه. نه من نمیخوام دوست عزیز که این سخن رو گفته باید چندین شاهنامه, شاهنامه دیگری که منتشر شده همزمان با ما پنجاه هزار تومان قیمت گرستن ما هنجا و پنیز آرطمان از سر گذاشتیم این دوست باردن شسته تشیب بیارن بنیاده نشابود که من تقدیمشون شم بکنم نگر شعن من اینه که درباره قیمت صورت نه من این که دارم میگم چون میگن این دنبال این چیزا هستن ببخشید من این رو مثلا اینا سوالاتی هستش که شده های دو جنیدی بعد تلفونی اگر هست میشنویم از کن. با تشکر از آقای دکتر جانهیدی با رو برنامه شده ما رو خطار دیونم واقعا زنده باشید تاییدی هم از نظر آباد با سلام حضور استاد گرامی جانه آقای دکتر جانهیدی بخواستم سوال بکنم ببینم آیا عمر هزار ساله زحاک دهنده یک دوره تاریخی خاصه و یا هزار فقط یک عدد کسرته تشکر میکنم. سیامک نبیری هستم از اراک. در روز بر شما من در سخنانم آشکار گفتم که دوره تسلل بابلیان بر ایران هزار سال بوده و وقتی که من کتاب زندگی معاجرت می نوشتم فکر کردم که دو هزار سال بوده برای که یه دوره فطرتی که بین تپاهای باستانی چوغامیش و گهنج دره کرماشان بود دو هزار سال بود من فکر کردم اون زمان نمیشه بودم که پس این دو هزار سال درنامه تی به هزار سال شده بعدها وقتی که ما مطالعه کردیم دیدیم که نه درست چون که از آغاز فوران دماوند و البروز آغاز شده و به پایان اینها که 6000 هزار سال پیشه درست هزار سال گذشته این هزار سال هزار سال تسلط بابلیان بر ایرانه و افسانه نیست کاملا دانش زمینشناسی اون رو تایید بکنه. آ به پایان برنامه نزدیک هستیم میخوااستم خواهش کنم که جنبندی اگر میشه بفرمایید صحبت امروز رو این رمزگشایی امروز رو سپاسگزارم من اول از شما پوزش بخوام وقتی که این دو فرصت نشه خوشحالم از من شد من به شما خشم گرفتم نه نه نه من بخشم من چون بخونم چون به چشم شما نگاه میکردم شما ببخشید <تصفح> نه خیر کنم قربان ببخشید من خوندم من نوشتم بخونم یه موقعی یه چیزایی رو میگن چون چند تا تلفن زدن و بعد از عثمان حالا پیامک می‌فرستن بله دقیقه بیشتری بکنم ببخشید بله. من اوزم میخوام از شما بله شادکمی و خوشی که در دوران پایان دوران جمشید ایرانیان رو کشید به زیاد و بعد سقوط در همین زمان اتفاقا در کشور همسایه ما بابل نخستین یک حکومتی اهریمنی با یکیش اهریمنی خیلی ستمکار اه، و سوختار و همراه با کشتار و آزار پدید اومد و بعد این همه آزارشون متوجه ایران شد و اینها جوانان ایرانی رو میکشتند و برخی یعنی قربانی دماوند و البروز میکردن کشتارهای ایرانی رو آتش دادند در باری برمایه یا برمایون من بعدا خواهم گفت در داستان فریدون اینها چهار پایان ما رو میسوزندن و بعد وقتی که آینشون این بود که پسران و مردان رو باید بسوزونن چون پسران و مردان گریختن به پناگوهای کوهستان که در این بار در شاید در جلسه آهند من سخن بگم اون وقت دست یازیدن به جان کودکان ایرانی و مادران ایرانی ناچار شدن که کودکان رو تحت فریدون ببرن به ها یکی مرد دینی و اون کوه بود که از کار گیتی بیندوه بود فرزندان رو سپردند به اونها که اونها با آموزش های دوگانه هم رزمی و هم جنبه دینی که پدید آمدن کیش مهر با اون همراه هست این فرزندان رو آموزش بدند و بالاخره در پایان ایرانیان پیروز شدند این پیروزی ایرانیان همراه با یک پدیده فرهنگی خیلی شگفت و عجیب بود که من در داستان ایران اونا رو شعر دادم. اونارو رو امیدوارم که چند ماه آینده داستان ایران برسه به دست ایرانیان و ببینن که اون اون پدیده عجیب فرهنگی و دانشی چی بود که منجر به پیروزی ایرانیان شد. اما اون بررسی عمیق اون که وقتی که مردمی هزار سال ستم و کیش احریمانی رو تحمل بکنن و بعد به پیروزی برسن این مردم باید می که عاقبت نیکی بربدی پیروز هست شاد و پیروز باشید سپاسگزارم از شما آقای دکتر جنیدی برنامکی از سلام به آقای دکتر جنیدی استاد بزرگ شاهنامه را دوباره برای ما ایرانیان زنده نمودند آقای مرادی از کرمان شاه کرمشان او خیلی محبت دارید آقای کرمشانیا مرد همه پهلوان هستند دیگه و به شاهنامه توجه دارن امیدوارم که شاد باشید و همه ایرانیان با شاهنامه روان خودشون رو بیاراین جان خودشون رو آرایش بدن شاد و پیروز باشید شما برنامه پنجره های رو به مهتاب رو شنیدید برنامه در حال پایان هستش زمان زیادی نداریم آقای دکتر جنیدی از شما سپاس گزارم بازم منو ببخشید اگر پیامکی که خوندم ناخوشاگاه ببخشید عذر میخوام شما استاد عوامل برنامه دوستانی که در این برنامه منو یاری کردن تهیه کننده سرکار خانم ازم دلبری، همانگی برنامه سرکار خانم سویلا رزایی، و برداران خانم نشیب با آقای هیدری، اعتباطات آیا فروزنده، خسینی و محمدبور سردبی و موجدی برنامه بنده همید رزا هدایتی راد هستم و آقای دکتر جونهدی کارشناس عزیز برنامه یک شمب شب ها فرد شب با آقای دکتر قدب دین صادقی درباره باره و نماد صحبت میکنیم بخشیش رو صحبت کردیم در هفته یک قبل دوباره در این مورد صحبت می ود محتاب می درخشد شب تا ماند پایاب لذ راه دراز بر دم سپجد مردی تنها ها کوله بارش بر دوش دست او بردر در با خود غم این چند خواب در چشم ترم می شکند. شب بخیر